چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نیجان من خطا اینجاست سرم به دنیه و اغبی فرو نمی آوید تبارکله از این فتنها که در سر ماست در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فقان و در غوغاست دلمز پرده برون شد کجای ای مطرب به که از این پرده کار ما به مرا به کار جهان هرگز التفاعت نبود روخ تو در نظر من چون خوشش آراز نخفته امز خیالی که میپزد من خبار صد شبه دارم چراب خانه کجا چون این که سومه آلوده شد زخون دلم گرم به باد بشویید حق به دست شماست از آن به دیر مغانم عزیز می که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست چه ساز بود که در پرده می مطرب که رفت عمره هنوزم دماغ پرزه باست ندای عشق تو دیشب در درندرون دادند فضای سینه حافظ انوز پرز صدا است